کارها به سبر براید و مستعجل به سر درآید به چشم خیش دیدم در بیابان که آهسته سبق برد از شتابان. سمند باد پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میران.